بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمين و صلو الله علی سید رسول الله و آله طیبین و طاهرین و محسومین و اللهم افرنا جميع جمعی المشترین و رحمنا و رحمت که آر رحمت بحث معروفی بود که ارز کردیم ممنون شیخ در که امارات و اصول همهی یا بعدی از اصول خواهی مقام فرص میشن یا نه و بحث در قطعش رو متعرض شدیم قطعه طریقی و قطعه موضوعی و تو نتیجه نهایی رو دیروز ارز کردیم که حالا امروز توضیح مختصری تکنیم رو تکنیم میشه که الله کلمات از خواه بخوندیم و از کردیم در بحث تاریخی در تدوین اصول اشکالی ببینید که این کلمات مثلا با واقعیت قبالا میخوره با عرف و میخوره و اشکالات ایشون رو متعرض شدیم و توضیحاتی را که درباره که ایجاد کردید تکرار کنید اون نتیجه نهایی به نظر ما یعنی این اشکال که این کلمات مثلا منتجه نیست یا با عرف و علایمی این مقدار اشکال کافی نیست این مسئله علمی بشه اون تحلیل واقعی مطابق با اکتادات اوغلا در باب اعتبارات قانو شد که اون نکته اساسی این است که خب به حسب ظاهر در برنامه اوغلا این هست که اگر قرض به چیزی پیدا کردن خب ترکیب آثار اینا اجماعه تحصیلش خصوصیاتش دیگه است بحث دیگه نکته بحث اینه که این سر تکیب آثار تنجز و تنجزه و چجور باید رو کنیم چون به اصطلاح کنیه که قد داریم چیزی که قد آور نیست داریم مثل و بشور عملیه داریم مثل استسها بشور عملیه محرز داریم مثل اتیاد چهار قسم داریم از شد من به دوزه ارسرم واقعی به اینه که ما باید دیدیم سر حجید قد و تنجزه تکلیف دارد اون سر بشه تو هم توضیح داده بشه تب رو اون مرانی روشن بشه از سر ممکنه این باشه که چون ما عمل میکنیم رو اگر نقطه خود عمل باشه خب در امارات هم عمل میکنیم در اصول محوظه هم عمل میکنیم اصول غیر محوظه عمل میکنیم. این فرمین میکنیم و هر که احتمال میدیم مرانوشه اصاسا نظر مبارکی کن اول اینجوری بوده احتمال در وقتی بلیشتر به ساله شد داره قامتل امارات ولی حصول مقامل حیل من با من و از شد که من دیروز توضیح شهر از خردم من که تقریبا مدل بستان هستان در این چه پنجه سال اخیر من بمشه عبارتشون این دادشکال لارهی به پیگو جوب مطابع هستر و لزوم الامل علا شده که مثلا احتمالا از این عبارتیشان در بید که این لزوم عمل اگر محیار حجیت لزوم عمل باشه یعنی خود جخص رو نیجور تفسیر بکنیم همچنان این عبارتیشش شکری واضح واضح نیست بعد فرن تریفیت بقید ذاتی هستم بعد تعلیم تریفیت برده اما چون لزوم الامل به کار بردن و وجوب مطابعت این احتمال هست که نظر موارکیشون در تفسیر خود جیگر چی؟ کلو مایج بار عملو به کلو مایج بار عملو به تو قرض هست، تو اماراک هست، تو اصول محرز هست تو اصول تو هست, و هست. این تحرید احساسی رو از اینجا راه دو راه مثل مرمون نایمی و استاد مرمون آخوی و دیگرانه و زواهر اقوات اینا اونا دوباره این هستن که نقطه یک کاشفیت اصلا نقطه کشف اصلا خودجه بکاشه اونی که میتونه کشف بکنه حالا یا کشف را از مراد بکنه مثل زوادر کلم یا کشف را از کلام سدور کلم بکنه مثل خبر واقع یا کشف را از واقع بکنه مثل بگم مراد کشفه اون چه که مثل قول وکی کشف بکنه یا کش بکنه از پوشیده که احتیاج به تخصص داره میشه اول راه خبره. و لعله خمره، حتی لعله در این قسمتی که خبرویت میخوام تجربه که خبرو غیر که شما تون میتنه. شما میشه ای این نزد شما یه نفر ابوالسرک پیرزن در جنوب یه اینکه همه به به زی شعور هم نداره خود دسته هم رو کنطور اونی چه خبرقییتی اینه که بگیدی این نبزتون به شما مثلا کبزون خرار بگاره مهده خراب بگاره طلب خرار بگاره اینا هستان تخصیصیشه تخصصیش با همه کلام هم قوله احلا خوبه این توضیحات از از مبنای مبناه ناینی و این کار صحیح مرمون ناینی ولو شکره بازی ایسا بخونید اینقدر سریعه سریعه نباشه اما این مدنگیشان اینه خلاصش حجیت رو به بهاد کاشفیت گرسن یک کلیم لذا کاشفیت در هر دوتون ذاتی میدونن و حجیتون ذاتی میشون کاشفیت در نیزه امارات ذاتی نیست، یعنی ناقصه احتیالی تو جرد داره کاشفیت در اصول غیر غیرون مورس کلیمون رسول هم وجود نداره مثل احتیال اونجا حجت منه لزوم عمله هست اما حجت اونه کاشه رضا رو در اصول در اصول هم از کرده توجیه خاصی داره که از که زبادر عبارتیشان مشهر نیست که من در نور از محروم اصطاق در این بحث نرده حالا این راجبه محروم آره خویی هم همین همی شد. پس اینا داره یعنی حجیت و اینجوری شده. حجیت منچهش کاشقیت نمکته که حجیت کشم هر چیزی کاشقی ها اونها در بست شد ترین دیگرد و کاشقیتش ذاتیست یا بگو این ذات قرد حقیقت قرد چیزی رزونیست خایده های حجیزی که میشه ذاتی یا خیلی واضحی وقت اما چون احتمال مخالف داره فرصان سی در سر هفتاد در اصلا موجه به بنده سید در اصلا باشه در همه آزم مبنای مرحومه استاد مرحومه این این تطمیم کشفه. یعنی تعبض میاد میگه این کاشه تامه این کاشه تامه پس اینجا حجه در اصول محبزن به خاطر احراض واقع اصول محبزن که به این لحاظ جیت نداره به لحاظ تنجس حجیت داره از از این محمد نه به لحظه کاشفیه روشن. پس این اینا در دنبال کاشفیت و کشف رو نگاه کرد خجیت رو پس در جایی که کاشفی ذاتیس یا ذاتشه حجیت و از خارج نیه از خود اون کشف در این نقطه خنگیزه این بحث رو شما در تمام دانشگاه های گوه هم میتونید مفرح رو کنید که نقطه حجیت میشه او حالا چیه؟ سؤال به نظر ما نقطه حجیت کاشفیت تأثیر داره، اما کاشفیت زمینه است. چیزی که کاشف هست حتی میکی کاشف تامه تامه این به نفسه مختصی حجیت میعنی علت تامه برای حجیت نیست تیم همچین چنین وضعیتی شدیم، اینو هم تکرار بکنم. چون قصدن هدیه تامان یک حدیث اجتماعی میدونیم و چند حدیث اجتماعی است خود کشفی نفسه سالاریان نداره. باید دائما یک نقطه خارجی باشیم یعنی. که تریادیم. اگر بعد راه هم هدیت نه اونا هدیت نه با خواستی که اختلال نظام لازم است. اگر بعد نه هدیت نوشته اختلال نظام است. مشکل بیشتره. اگر قاضی حجت نباشه منشأش در جامعه خصومت باشه. این همیشه دعوا برقرار باشه. مثلا اگه آلا در قاضی بودن که یقین پیدا کردی واقع بود حکمش اونجا عمل بکنید. اگر واقع واقع نبود دست نگیرید. همین که قاضی یا من یعنی که واقع نیست. بعضی به چه قاضی یه باز امامی که میمن باشه. همینطور این خصومت تو جامعه ادامه پیدا می‌کنه. برعکس نمی‌رسید دیگه. بجای نه اگر آمد گفت قول قاضی هجته درست قاضی قولش کاشفه نه اینکه کاشفی از نظاره لیکن به زمینه این نقطه اجتماعی یا جرد هجته این تمام مصابات من اینه پس دائمان به لحاظ یک نقطه که اسم شما موضوعی یک نکته موضوعی هست که اون دخالت میکنه در هجیه و اما خود کش حتی به مدر یقینش یعنی اون کافی نیست پس این خبر باز. برای سهولت بر مؤمنین خب این همه مؤمنین در مکه در مدینه و مقام در مدینه بودن در کوفه و خراسان اینا میگن هر کدوم خودشون خودشون خب زندگی میکنه. این سهولت بر مؤمنین خبر واجب رو خبر ثوبه رو با یک شرایتی خودش خاصیت داره بقوله اون میان به لحاظ اون نکته خب دقت کنید ولذا معنی حجیت هم تقسیم کش نیست سوال فرمایند معنی حجیت اون نقطه است اون چون نقطه موضوعی هست نقطه موضوعی که اگه امر واقعی است. اون رو اصطلاحاً ما اسم شده که مسلحت سلوکی اسم شد مسلحت این به خاطر اینکه اختلال لازم نیاد، به خاطر اینکه رفت خصومت بشه به خاطر اینکه سهولت بر مردم باشه به خاطر اینکه نظام اجتماعی راه بیفته یعنی برام شده که زبان بسلام موجه باشه و خب، هم هست وقتی یکی بگه برو آب بیا رو کاشف هست از معنا اما برام شده که به این کاشف طالع بکنم به خاطر اینکه اختلال نظام و الا بگم برو بکش واقع، واقعه واقعه مراد چیه پنج شش بار باید سوال بکنه ای آب بدی میگه این، اینه او او که کی به هم میخوره درک فرمایید اصل حجیه اصل کاشفیت هست میشه این اینو کار کرد لكن این زمینه است برای حجیه است و دائما به ده اون نقطه به اصطلاح موضوعی البته مرحوم شیخ هم از کلماتشون مثل رسولی که همین اما در غیر قاعده در زن اون که ما اضافه کردیم اون قاعده شامل همینی فهمونده تمام ادوات واحده ایشو پس اگر نکته این شد خوب دقت بکنید چون در این شخصیتی اجتماعی فهمون ما توضیح رو ارز کردنش دیدوستش می از می آنن ارز کردن چون مسئله قهر مسئله حجیت مسئله تنجزه که این مرحله به اصطلاح ما ششم در حکر مرحله نه اقسام حکر چون جهلی که میشه از ارز بعد از جهل مرحله فعیلیت فعیلیت بره یعنی ارسال رسول و انزال کتاب در اصطلاح قرآنی انزال لعنگ را این اصطلاح فعیلیت بعد سهریت مصول به مکلطه به اصطلاح قرآنی و منبله بلوغ مکلط منبله قوشه امن از سواب من نرمنبله و انه نبیشه امن این مرحله بلوغ این مرحله بلوغ اما مرحله حجیتی که ما بحث کنیم این مرحله حجیت ارز کردیم دو بخش میشه این حجیت خودش دارمدار انتباه صورتی در ذهنه تا اون صورت در ذهنه حجیت نمیاد اون صورتی که در ذهنه دو بخش میشه یه بخشی صورت کبراز کلیه که مثلا الخمرو نجسو یه صورتشم صبراز این مایه خمره پس یه کبراز داره یه صبرازه اون قسمتی که کبراز در اونجا شارع عادتا دخالت میکنه چرا؟ چون اون یک انتظام اجتماعی میخوا چون قانونه قانون برای انتظام جامعه است. در اون که برمیگرده به کبرا مثلا میگه از شور بخیر احکان پیدا بکنه از این راه برو بیگه خط شده دارده خب بیگه خط این راهی که گفتن موید برید این برای این که قانون برای انسجام و جامعه است، راه سبوت قانون هست این تصمت که راه سبوته اینم برمیگرده به یک انسجام اجتماعی بخش دوم چون مقدمه ای انتصاله. این مایه خارجی خمروی این اصلا آزتا نظام های قانونی لگه ما به این که شما اشعال فرم دید منعه اینجا قرطی یک امر شخصیه یعنی آزتا شعن قانون نیست بیاده همراهی شما این مایه خمروی یا خمروی نیست اون لباس مثلا قصدی هست یا او نه ولی ازا یکی بیرانده ایش خمرو اشتناب بکنه یکی بیرانده ایش خمروی نیست بخوره تو این مرحله قالبا قانون دخالت نمیده چون انزل سیار عریضی داره دخالت قانون اون انتجام اجتماعی رو به هم میدیده اون انتجام اجتماعی تو مرحله اول روشن که تازه ما پس بنابراین تبقیه این, این تصور خجیت درد ذاتی به این معنا که قابل جلوگیری باشه نباشه نیست کندن لیکن هر قانون شأن قانون گذار غالبا این جوره الکی میشه تعریف بذارن اینکه این الزام چون اصل اجتماعی هستن پایگاه اجتماعی از زمان هزاران سال پیشه متعارف شده این بوده که در بحث‌ها آن گذار و مقدم دخالت بکنه یعنی راههایی رو درست بکنه مثل یه ادواره قیاس وارد شریعت از راه استصحاب وارد شریعت نشه از راه مثلا قول فضل ابو حنیفه وارد شریعت نشه قول امام صادق ممکنی؟ عمر راخیه یعنی نه اینکه ممکنه این عمر مطارب اما بیاد شما اگر میخواییم مثلا این باب مثال این خمر یا حتما واقعی این راخیه نه،, نه ممکنه اما سنگینه بسیار کار خیلی متعاربیه یعنی بناشون فعلا نیست ممکنه کارم بکنی چیزی نیست که مستقیل باشه یه زمین رو تناقض یا یه زمین عدم رو هیچ که رو متعارف این شده چون این مرحله رو زدن به مرحله انتصاب خوبه پرکی ازید چون من از کردم مرحله جل این شغون شاره مرحله فعیلیت این هم شغون شاره این مرحله حجیت مرحله انتصال که آخرین مرحله است این شغون مکنده بردگردیم مرحله امتصال شغون مکنده این حجیت نصف است. نصفش برمیگرده به چیماره؟ به کبره ها روشن شد تحلیل ما؟ تحلیل ما اینه نصفش برمیگرده مکلب مقام امتصال چون مقدمات امتصال دیگه اون جایی که برمیگرده مقام امتصال عادتا شاره دخالت نمی کنه یه بگم محاله چون یه حساب کتاب نداره شدیه پراکنده است اوضاع رو برگیرید پس بنابراین این نقطه خوب دقت بکنی ما نه به دنبال این هستیم که حجت یعنی ما یعنی که به نه حجت معنایی داره مزار کشف گرفتیم از در تحتیل رسول اشکال شده اما تحلیل علمی داده نشده ما طبق تحلیل خودمون مطلب بخی این واضح و روشن نایم کردیم گفتیم اگر این موارد حجتیت اینها ذکر کردن فرد میکنه مثلا خود قاضی غازی خود و غازی خطر یک باید در شورای مستقل باشه داخلش نمی‌شه اگه گزینه در شورای دولتی جواب راه نمی‌کره چه اینکه دیگه نیست اونجا نمیاد برای طرفین خصائص فردی و صفات فردی رو دقت صفات فردی در نظر بگیره چون اگر در نظر بگیره قضاوال از یعنی چه صفات کاربردی هستن این چی؟ یعنی به BIOS رو مراجعه کن. اگر برای صورت پیدا اگر بیشی واقعیه خوب از آباد من این, خاضی. این ای واقعی نبود؟ اگه بذاریش توی واقعی نه توی آب نه واقعی خاض... نبود. یکی این, این خصوصات هم جلوگیری کرده. می‌بینی؟ چون راه اخصوصیت نمیاد فردی شما حساب بکنه خوب چون الان روشن شد. نکته لجأله و اون خصوصیته. این نقطه خصوصیت نقطه اجتماعیه نقطه فرقی. چون نقطه اجتماعی دنبال همون نقطه اجتماعی خصوصیات فردی شما من یقین دارم یقین دارم که خوب باحکم باشید خوب یاد می‌بشته باشید خوبه قابل دیگه قولی خاصی متعبره یکی سیب میگه مثلا گفته نان بخر میگه من یقین دارم مرادش برنام بخر مثلا برنام جوانه بخره مثلا کاهته داره بخونه خب برو نان بخر که وازل قنوشیه این برسر اضعای شواهدی بکنه در حد اغلاف او در اون محضور میبینم به سلام تو بی خود گفت برو نام نام این نیست که برو نام توی در که به قبول زبازه چیه؟ اقامه مشتمه این نقطه پردی نیست من یقین به خلاف بکنم بب... اینا در ذهن اون مبارد نشون مرزونه چه خنساری 18 اونه ترن ما خیال کردم تمام این امارات وقت همیشه حالت ترگیه بگرد کردیم اشکال ما به اینه که این نیست نکته هاشو در نظر گردیم خود کیه اون نکته نه تابع کشفه نه تابع روزوم عمله که ظاهر عبادشه از از اون زارتشون همول عبادشه چون بردان اون طریقیت اون ظاهیه آقایین که بردان شیخ هم ندون این عبارت میشن تریقیت اون � لذا خوشیت و دارمدار کشف کردن چون ما هستر مید. در بعض از خوشش تابع استفت تربیه این هست ما داریم که خوشش مثل بیانه بیانه در موضوعات خاربی خوششش چون بیانه یک عمر تربیه یعنی چی؟ یعنی بیانه آمد این نجسته بیانه آمد این خسره بیانه آمد این مثلا ملک کولانیز دو نفر عاده بیانه نیست ولو برای شما رسول پیدا نشه قرض پیدا نشه اسمیان پیدا نشه شما تو باید به بیانه عمل را همین بیانه چون صفت فردیه خب قطعا اگر شما قرض داشت این قرض داری صفت فردی موقتنه خوب خاطی کار رو اگر بیانه آمد باید این شما یقین یعنی داریم خودتون پا توی این بیانه اشتباه کرد شما به یقین تون عمل این هرزی که بزرگان گفتن با وجود فر به اماره مراجع میشه قصد مقدم اندفرد قصد اینجا درسته چرا؟ چون نکته که در بگیهت بیان آمد در موضوعات خارجی اون یک نکته اصطفت فردیه من چون موضوعات خارجی محدوده مکلب به از اگر محدوده من شد آزتر اگر من کاشفر اقوازاشم به کاشفر رو مراجعه میکنم وقتی یقین دارم به یقینم مراجعه اما همین بیانه در یک جایی که پدیده اجتماعی میشه با قطعه هم حجت نمیشه، همین بیانه. از همست کردن از احسانت بشیه. قاعد هستن که اگر بیانه پیش قاضی آمد شهادت داد که این هوا مال این آغاز قاضی خودش هم عهد داره که مال این آغاز نیست. گفتن باز به بیانه آماریم. بود چرا؟ چون در اینجا بلینه نه شیل اجتماعی پیدا کرده قاضی باید یک مسئله در خط جامعه حل بکنه افکار خودش،, خودش این مسئله معروبه که قاضی به علم خودش عمل بکنه نه. یکی شرعش اینه یعنی نامازن از روایت مبارکه این نما عرضی بینکن بل ایمان و بگیرات از این نما گفتن منحسرن باید تفتیار بگیرات منحسرن قاضی باید لحاظ اجتماعی بکنه، طبق بیانه حکم بکنه. حق نداره به فردی خودش درگرده. حالا <تصفيق> من یقین دارم شما اصلا که این اشتباه کردم برگرده. اصلا خوبه حاضر است اشتباه این نه کمی آقای شورای شهادت یک ولی اون طرف دیگه است. میگن بواسطه بیانه حکم بکنه و اینا آخری این که من واسه شروع مسئله میخوام و ما دیروز و هر چون دائما نکته است اون نکته فنی اصولی اینه که ما باید اون نکته حجیت رو حساب بکنیم جواب کلی اگر نکته جوری که میاد صفات فردیه شما را نگاه میکنه خوب یقین برهش مقدم اگر نکته جوری که صفات فردیه شما نیست سر هجیتش سفات فردیه شما نیست <تصفيق> یعنی در مقابله رو کار کې میکنه جای بحثیت، تحرین بحثیت، که محام هم جایی بحثی طر که طب و ها صحبت میاد پس این به موارد شهر میکنه به حسب موارد حتی اگر گه یک مسئله که یک واسط فقهی از دید اسلامی یه برخورد اجتماعی باشه یا یک مساله تکویدی دیگه یعنی برخورد ترجیح بره مثلا اینکه چند بار عرض که اگر حافظ توبه بدینه میکرد که فردا بس آخر ماه و اول ماه شبال نیست و این طرف خودش دیده خودش به چشمه خودش, خودش ماه رو دیده من ازاله میاد به هفته هاکم بازار کرد یقین داره بردر به هفته از پیش ما اینطور نیست هیلنه این مقدار آمدش اینه که مسئله احلال پیش ما فردیه اجتماعی نیست پیش اونا مسئله احلال از اونه حاکم بوده یکی از مظاهر جامع انتجام اجتماعی. که من توضیحش از کردم انسجام هم فقط به خاطر مثلا هلال و نمازهی خونده اینا نیست اما چیزای دیگه هم من... هست چون اونا می کل دستگاه روی رو رو رو این رویت هلال درست میکردن مثلا اینجا رو با همه که دعوی داشت این میگفت آقا روز تنجای ما شما من رو هم میگفت میگفت اروز خنجی میگفت نه من ثابت سابه زیده این خب این دعواز درست می کنه خود این که لذا سر این که هلال ما برگشتن به حکومت نقطه این بود بست فقط هلال و روز وارد، افتار و نازگی نبود ها احکام دیگه بود دعواز درست می کردن لذا در رحم خودتون از باب علاج واقعه قبل از بغوباره کرد آمدن گفتن این رو بده این رضا اجتماعی. اجتمالی ببینید وقتی شد اجتماعی آقا من خودم دیدم ماغم من میدارم این روز تنجو... چا... به حساب من خودم میگه نه شما حکومت دو با تو دیده با این که هم داره به قفش عمل پس نقطه فنی این شد خلاصه شما بیایی نقطه حجیت رو پیگاه خلاصه بعد؟ اگر روزو باشه یک قدیجه میداری جهت کاشفیت و این باشه یک ندیگه میگه ما بایده حجیت به کشف زمینه هست اما اون نقطه نهایی در حجیت یک عمد خارج از کشف خود ذات کشفی خارج از کشف خب اگر خارج از کشف شد اون اونو امرتقا بکنیم پس جزء سفات تربیه ما. اون نقطه باید بررسیه میشه. طبق بررسیه که انجام داده میشه وقت معلوم میشه که آیا خواهر مقام اصلا اعتبار یا تقضی علم توش نمیخواه با وجود علم هم میگن اگه اثر نداره با وجود علم هم میگن اثر نداره اونی که به ذهن ما میاد مطابق با رفیخادات و اغلایی اینه نه این تفسیرهای کتاب و حل به شد اینه نقطه هست حل به شد به ذهن ما اینه این راضی به قطع دیدی. خب میگه دیده باشون باقی رو گفتن جامعه دست و در اون رفایت داره امام سادر شانون زاکه اله امام المسلمی انسان سرنا و این افتر با سخواه هم افتار کرده بعد که دیگه رو خوبی. که من از من دارم اینوز مواقع نزنم برمشه به خاطر طبیعه هستی کشته بشونی که در بین نهر سرنا در دست طبیعه جامعه. کار دیگه هرگاه که نیست این بحث اغلابیت این بحث یک که نیست چون شما هلال رو فردی فرض کردید اما ما یه مقدار زیاد در فرو در زکار با امروزانت اختلاف داریم چون ما زکات رو فردی فرض کردید حکومت دست ما نبود اگر حکومت زباد دست شیعه بود فقط این زکار داره خیلی حکومت بود این که افوال با به تحبیل دیده هر منبود ببینید این نکته رو با... این نقطه فقط در مثل خود جهر نفسه یعنی در خیلی بخصه ما یک مطلبی رو ترمی نگاه می کنیم. یک مطلب رو اشتماعیم اگر زکات رو اشتماع نگاه کنیم قطعاً باید با حاکر داده بشه ها ما همین اولا ما معتقلیم خود کاشه نبدیم ما ما م... اولا ما معتقلیم باید یک تفسیر و اغلایی بکنیم اگر یک اعمال او آه... خ <تصال> اجازه بدیم اجازه بدین امارش شهر میکنه علیز من من ها اینو بگم. بگم.یه کسی گفت مشاه من طریهع من تسازه ببین شد من قطع به اطلازیم فا عمل نمیکنه. میتونه ببین نه جزئي نیست موردی فرق میکنه. چون رجوع به طریح از آلمان خبریت تو خبریت نیستی اون نقطه خبریت چون نکتش خوب رویته با قبل شما هم جمع میشه یعنی با قبل شما مقدمه من دارم یه نکته حوالیت رو یه جا خوب رویته یه جا ترسوی مسئله سهولته یه جا سهولت امره یه جا مسئله سهولت خارجی سهولت امره خارجیه اگر سهولت امره خارجی حتی یک ما مقدمه چرا چرا امره خارجی در اختیار شما برگنه برگنه آمده خلال راهی دوگلا لبوزات خارجی قابل توجهی میสารنده قضیهن طلبات در مجاز خارجی یک چیز باینره قرارداد بهش یک محصوله, محصوله. محصوله. محصوله. محصوله. اون داره محصولی میگه بیان به یعنی راست چون موضوعات خارجی مقضیه متلفه اینا اومدن گفتن چون در اینجا قرض مقدمه همه جا مقدمه هر موضوعی که نیست اون نیست اینا باید محاسبه بشه انبلن بودجت به خاطر کاشیویت نیست نفه خارجی داره او خود, خود یقینی اما اون حجیت که قول حاکم قول قول خبیر اهل خبره جمهورات اورفی خلا بضم مثل بر شده نه اشغال نداره اشاراتی بعده. مساله‌ای دیگ بعده. سوالات دیگه بعده. این در اصل گفتن ورهنمایی از سادی که جانشینی امارات جای در عربی تزینار و غلاش کردی. نه اصلا مختلف و بعضی وقتم مقدمام. از همین نکته ی فکر کنید. جانشینی درست. جانشینی به این معنا که اگر فشری در از موارد، قد اگر در بو جای دیگر مثلا اماره رو یک چیم در مقابل قرد حساب نمی کنن. هر دو کاشفیت دارن اینم کاشفیت داره اونم داره این چون کاشفیتش تامه این آمه مردم بهش عمل می کنن. اون که کاشفتش ناقصه این نقطه قلیتره می کنن نقطه چیم رو رو بخار برای آن نمی کنه یه چهار لبیان اول لکس همی بیشتون نمی درستم یه بچه رو نمی درستی خیلی هم و این چرا روونه؟ چون یه آقا نبوده. <تصفح> <دوم> حجت <تصفح> همین حجت ببین من, من من میگم حجت یعنی چی؟ مرحوم آقازیان آینه حجت این ما گفتیم این کاهمی. واقع نمیخویم ما. همین بس ترایی. آره یعنی بنای فعلی اوغلا برای ما است که در بازر قانونی خوب دقت بکنه. اما شما اجازه بدید شما در فیزیک میگن حجه نه در فیزیک شما میگین یک کتاب در فیزیک ببینین قول مثلا سقراط در من حجه ده خب میخندنم به شما حجه نمیشه این مدتی اعتراض قانونی در جاهایی که واقعا حجه باشه کیش واسه تحقیق در قوانین فیزیک و حیعت و نجوم و ریاضیات و ها میگن خود باید نتیجه کثافت تجربه و کثافت آزمایش نتیجه‌گیری بشه فلان دکتور این هر رو گفته ایشان قولش بر من حجت برای تو حجت اینه ایر نیسیه تر یه حجت ارز رو حجت اینه اعتبارات قانونی و حقوقی اینا بحشای و چون فهمیدی چون رو عمل نکنیم چون رو چون حجت این راجه به قطعه خب صحبت هایی شد، تخصیم بندی های شد، اشکالاتی شد، دیگه تکرار نده کنم انصاف قضیه اگر در لسان دریم، علم یا، مثلا دیگه معلوم و بولیه از اجتماع برن، انصافش انصافش اینه که تقیید ماشون به حسب زاره دریم، قیام چیزهایی که حالت علم ندارن، یقین ندارن، مقام انصاف هم درست نیست لبا هجه هست لبا بیانه هست بیانه آمد که این نجسه بولی بیانه آمد اما هنوز حالت علم بر من پیدا نشده تعبود دارم به قول بیانه قبول دارم قبولم میکنن. اما انساطا جعل هجیت برای بینه به معنای نیست او را علم حساب کرده باشه یا حالا بخون بیاری اعوایت اصولی دیگه بگیم اگر ما دو دلیل داشتیم یک دلیل یجب جبال اصطناب از محلوم یک دلیل اضافه شده در ارزان تصدقه بما نصفتی به این, این دوستان بخومت نیست نقطه فرنیه نیستیم بگیم دلیل دوم ناظره به اینه به عنوان معلوم البولیه بله اگر گفت اجیتنه به ان البول به این دارن بوله یه جبال اصطناب آمد بوله یجب جبال صادقا بول بود احتمال یه برعتر گذشته زمان یا چی توی شیخان آب شده یکی و اجتناب به خاطر استصحاب بولیه نه درست؟ کلاستون به عنوان بول خوب دقت کنید اگر رفع عنوان بول این هم کار نمی کنه بیان هم کار نمی کنه هم کار به مقدار لزوم اجتناب نه اختیار هم اون کار می یا این بول یا اون یکی به مقدار لزوم اجتناب اختیار هم می اما اگر آمد گفت یکی بل اجتناباً معلوم بولیه دیگه اتصاب این کار نمیکنه، کنید میگی معلوم کنید محلوم بولیه هست دیگه این کار نمیکنه، کنید برگیه نمی اتصاب انصاف رضیه اگر عنوان علم در لسان دریب اخص بشه قیام امارات کلن یا محصول کلن مقام علم انصافاً خالی از اشکال نیست ظاهر ارفیش همید که خود عنوان علم دقیقه چون در اینجا علم در, در لسان ذیل عکس شده اونجا علم که گفتید به سیره اووقلای در باب خود بود اینجا علم چون در لسان ذیل عکس شده مظای ظاهر لسان ذنی و تقیه به رسانه ذری همین هست که این باشه و حتی اگر مردم صال مثلا به آی ناییی قالره بودن به منای تطیم کش اینجا هم حتی به که تقال نبودیم حتی به مناع تطیم کش هم باز مشرل داره یه که ملاحقی بشه اجازه رو برمونه چون مرمون هایی میگه مبنی تطمیه کش اگر بیانه آمد که این بوره خب بیانه فرصی 90 درصد 80 درصد اون 20 درصدشی به خاطر تطمیه کش از درست داری حقه شکت نداری ازاله شکت شد 100 درصد اگر شد 100 درصد شد معلوم بوریه شد معلوم بوریه چی؟ یعنی اون بوری که کاشه خام داره خب اون خ بول باشه و کاشف تام کاشف شما اینجا تفریلا ناقص بود تعبدن تام شد نقطه افنی اینه میگه اون دلیل تعبد میگه این کاشف تام اگر کاشف تامه پس میشه معلوم بودیه این نقطه افنی اینه فکر بکنیم اگر دلیل ما این بود خوب دقت بکنیم دلیل ما این بود که یک جبال اجتنابا معلوم بودی یکی دلیل دیگه داشتیم ولی اشیاء کلها علا داره حتی یستبینه و که قیل رضالب او تبغیمون بهت بینه اون تبغیمون بهت بینه این قیامه بینه آگر این دو سو دلیل با هم جمع بکنیم معنیش اینه که بعد از قیامه بینه میشه کارش تام و میشه معلوم بولیگه این صافت به نظر من مشکله حتی اگر مبدون تصمیه کشت رو آز این دیگه از یک مقداریش مبنای این ساختن چون ممکن است و این برتر از همه ما ثکیم کشیده در بروی و خانی چون تنزیله، تعبود فقط به مقدار خودش میگه این کاش هم شک نیست همی میگاد تعبود میگه آقا ایمان چون از که ما در باب تعبود بار در این باهه در باب تعبود ما به دلایلش کار نداریم. ببینمش مطلب باز اون خیلی رووچند بشه بدیهی بشه ببینید شما یک تنزیل ادبی رو در نظر بگیرید شما در تنزیل ادبی فقط به مورد تنظیل نگاه می‌کنید به لوازمش نگاه نمی‌کنید مثلا بگین زید بیاتیه یزیده زمان نو دیگه نظر که پدر جماویه هست ما <تصفح> خودی رو نگاه کردیم خاصا ما قرار شام چان تو، چون یزید که شام بود این معنی بده که شما این اصلا اینا رو دیگه نگاه نمی‌کنید اصلا به اینا فکر نمی‌یشه اگر امام گفت ببین دقت کنید امام گفت بیانه 90 درصد من شک رو برداشتم خوب دقت کنید من شک رو برداشتم لازمش اینه که تقسیم کش لازمش اینه که عدم این لازمه این لازم ها رو با تنجیل اثبات نمیشه کرد چه تقسیم کش و حوااظهمون نمیذینه خلاف ظاهره تقسیم کش این لسان دلش ازاله شک ظاهر تقسیمش ازاله شک که دیروز درک کرد. بله اگر تکی میکشی یه علمون مثلا بگید اینجا گفته حتا یستبین لک الروزالک او تخون یعنی begyn با علم میشه من یک بله انصافت قضیه میشه حالا معلومه آیه خوبه منظور ناینی نظرشون میاد اگر مخالف تکی این باشه بله میشه مسئله قبول کرد به خاطر مشکل انصاف میشه تکیه اش رو قبول مید. در قطع موضوعی طائر مقام میشه این راجیه به قرض یا به صحبت از اینجا بسه در اینجای یک اباض در مسائل در تخایا اومده معلومه استاد دیگه ها معلومه این بزرگانی که اومدن پیگیری کردن که علم به که حکم نمیشه در موضوع خود اون حکم هست بشه و نه در حکم مزادش و نه در حکم مواصلش مثلا بگه که قرض شده که به من وجوب نماز جمعه نماز جمعه این خودشه اگر قرض که وجوب حرام میشه اگه هم اگر غلط شده که وجو نماز یه ودیو دیگری در بر تو برای نماز تو قرار داده میشه مماسله بحثی کردن که هرایی اونجا لازم میاد مثلا اجتماع ظنه اجتماع هم مثلا اونی که دور لازم میاد اگه خودش باشه در مصرش اجتماع میشه در بدیشم اجتماع شده بحثی کردن آقا این بحث ها خوب معلومه به لحاظ واقع شرخی بسیار بحثه ضعیفیه اینکه آثار فعلی نداره و ت... تلف عمر در اینها درست نیست کی بحث اولش یک مقداری تاسیس داره که اون در خود حکم به اصطلاح بشه اگر قطع پیدا کردی پس وجود ثابته نه اینکه موجود دیگه همون وجود ثابته بعد از کرد که اجازه بفرمایید بحثی بحث که خود حکم مترقّب باشی برای این که حکم می‌شه تو بحث اول زن خواهد منم می‌گم اون طوری زن که ایشون می‌گه مترقّب می‌شه ما یک مختصری فقط ظهور بحث رو اینجا عرض میکنن، دیگه این بحثای کارو کردن دور و مو دور اینجوری خود به خود منتقلی میشه ببین قرضی که از صفات نشاطیست که غیر از کاشفیت چیزی نداره کاشف سرده من همیشه عرض کردم مثلا خب خوف را استفاده نستانید ولکه این قیل مثلا خوف دارم که در راه دشمن باشه هم کاشفیت داره هم چیز اضافه داره حالت امزاج نست حالت ناراحتی نست اما قد صفت محضه چیز قیلی کاشفیت نستانید این به طور متعارق قابل قبول نیست چیزی که شعنش کاشفیت صرفه بیاد تأثیر گذار باشه این نمیشه این قاضر همون طرفه بیریم حالون بحث را را, را, را, را اگر بعد فیدار کردی این دیوار هست پس دیوار هست این تو سکرینی ها چیزی قابل نمیشه چون این خطه ما هیچ ربتی با تکیم اینا خیال کردن در اعتباریات ها کنکه خوب ترماس ها اگر قد فیدار کردی وجود هست پس وجوب ثابته خب اشکال دو قبل از خرد میشه بعد از غرد نمیشه دو. اصلا بحث این حرام از رهنیست این کلامی سی نحسه غیر قابل ت چیزی که شأنش ترید سرق باشه این مؤثر بشه چون باید تاثیر بگیره اگر اینو شد با تاثیر کش میشه دیدی بله اگر تو زن داشتی این حکم هست پس یعنی بدون که اون حکم هست این ممکنه چون زن این حالت ادراکی سرق نیست تریگی سرق نیست یه قصوری داره یه نقصی داره اما اونجایی که حالت ادراکی سرق بخود خاطر سرق یهو با اجتماع صدر میونه بمونن اصلا این هیچ نکته یه نداره چون در امور تقدیمی که چون صفت نفسانی خواهی که واقع برود بکنه در امور اعتباری هم اینها تأثیر نمیشه چون هفت تابع ملاقات خودش و وقایی خودشه اونیشه که در نفس ما صفت نفس طریقی سرده هیچ شعنی از اون نداره این نمیزه تأثیر بکنه بله مثل خوف میشونه میگه اگر تو خوف داشته که اینجا دشمن هست پس آثار دشمن باز این ممکنه ولی دشمن هم نباشه چرا چون حالت خوف یعنی چه ترس داره حرج داره ذیق نفس این این داره این میخواد خوف رو ذیق نفسه این معبود این مشکل لازمه درک کنید وقتی بحثش میشه یه دور دور و بر میویم با هم این من کسی هم قائل نیست شده اصل مطلب این بود که اهل سنت گفتند اگر مشهد خرص کرد و به نتیجه رسید این میشه حکم الله خود قصر. یعنی اگر یک انسان عامی آمد رو با نماز جمعه واجب مثلا خم نجسم با مثال این نمیشه حکم الله اما یک مشهد به آیات مراجعه کرد. مراجع کرد. مراجع کرد به روایات مراجعه کرد به مراجعه کرد به نظر راه ها مراجعه کرد بعد به این نتیجه رسید که از مجموع این شواه یا اگر او از مجموع شواهرین رو در رو این میشه حکمالله صفته اون چیه آنازه صفت اشتهاد در نظر گرسی؟ این طریق ای. اون نقصش چیز روچه؟ اگر شما طریق سر ببینید، این بحثه این بحثه این بحثه این بحثه این هی فرصه هم به انسان فردان یه حرفا بکنه زد دومس بجانسی حرفا نه واقعیت قانونی داره نه تصور درست قانونی کار نداره ا استهاقود قیلت دورما این کار به دورشان نداریم اصلا این صرفت نفسانی من خود دقیق رو کنیم که شعلش طریقیت صرفه هیچی نداره قیلت از صرفه هیچی نداره این بیاد مثلا منشع جعل بشه منشع حکم بشه حالا حکم مماسل مزاد مو هر طور تصور این خودش قبلاغی نیست خودش این حالا دور مخواد لازم بیاده مخواد نگاه این مثلا بگی علم رجعالم موضوع برای این بحثه اول جواب است دیگه حالا این بحث کردن فرضیه نشه علی وقت این اصلا واقعیت حقوقی و واقعیت قانونی نداره ما به همین مقدار اکتفا که وقتی بحث میشه ایشون تو بحث زن اونجا وقتی توضیح بدین که اصلا بحث بزن چرا مطرح شد اصلا این بحث علم رو اینا اشتباه گفتم با اون وقتی در اونجا مطرح شده اون ادله رو وقتی هم بالا بخش دیگری که ببین من به همین اقتصاد چون بحثی طولانی شد و نقطه نکته قرینی که اصلا دیگه خوشم راحتو بخش دیگری که هست که اودن گفتن همین تقسیماتی که برای علم هست برای زن هست برای تاریخ یا هر یا موضوعی موضوع تاریخی یک تقسیماتی کردن البته بعد از سولارش اینا مو تحقق خالجی داره و چون بحث در زن مستقلاً خودش با الان این شون بحث رو ده همونجا هم ایخالش این راجعه به کلی این بحثی که در اینجا شده بحث بعدی تر... تصب... تر حسب ترتیب شیخ بحث تجریه حسب که پای تجریه مقدم است آقای خویی خوی آقای مقدم کردن بله بحث تجریه بحث تجریه همین نمیم دارم اگه آقای مویل باشن تعرض بشیم بحث تجریه به نظر من اصولاً بحث کلامی نقطی اصولی نداره چون مثل مقمون صاحب اصول قبل از این آقای مطرح کردن اصول کتاب درسی بود در اون زمان ها مثل مروم شیخ متصدی شدن اصلا بحث تجربی، بحث کلامی کلن یه چند تا نکته داره من فقط ترده چند تا نکته شده که تصیمی شده تو کلام در توی بحث علم اجمالی و بحث حضییت احکام بحث حاصل از به اصطلاح مقدمات اقلیه نماز مناقشه که با اخوالیه هست به نظر اون بحث جهت اصولیش اصولی خیلی تر صبره. حالا گفتم اینم خیلیه، اونم خیلیه. اینو چه نمی‌دونم، اینو هم ندارن. یهو حالا مثلاً بحث اینجا واسه طرف. بهترشون خوری دارید، نداره. در حقی هم و اصول نداره. فرض ان شاء الله میشه. الله علیه